ایران بازنگری در تاریخ قلمرو میانی فرگرد اول وندیداد یکی از مهمترین منابع تاریخی ماست فرگرد اول وندیداد و عجیبه یکی از غلط انداسترین هاست یعنی اگر تو فرگرد اول وندیداد اشتباه کنی همون سی سال بادرها رو اشتباه بیری. حتی عجیب استادای شناس استادایی که رو تاریخ روایی رو دارن هم متاسفانه من می بینم فرگرد اول وندیداد رو اصلا یه چیز دیگه متوجه شدن. شاید بگن چطور شد همه نفهمیدن تو یکی فهمیدی؟ نه خیر، اونها هم که اینو نوشتن میفهمیدن تعدادشون هم خیلی زیاد بود. یکی از چیزایی که واقعاً درباره جمشید من تا الان من نمیگم من هر چیزی که درباره جمشید وجود داشته در متون پس از اسلام و متون کهن و همه جای همه ها خوندم. ولی تا اون که مطالعه کردم واقعاً این سرمایی که در دوره جمشید اتفاق افتاده که بر اساسش یک اتفاق بعدی افتاده که دیگه همون داستان‌های کوچ و فلان و اینا باشه من پیداش نمی‌کنم جایی. ابو معشر همچنین گوید ایرانیان در مدت سلطنت پادشاه خودش اختلاف دارم با عقیده بعضی که قوبات 20 سال پادشاهی کرده و با عقیده برخی پادشاه به 10 سال هم نمیرسه. یعنی این نکته که اینا آدمیزاد بودند و سالهایشون طبیعیه، یک مسئله خیلی قدیمی هست جدید نیست ما بشیم رو قرن بیسته اینا رو بخوام تعدیلش کنیم مثل کاری با سومر کرده. یعنی این نویسنده رو پجوش کردن حوزه ایران خورش رو به این وضعی رسیم که این اعداد غیر طبیعی است اصلا معنی نداره چرا معنی نداره و بهشین پیدا کنیم و پیدا پی انسان سنران بی سی میتونه بره کاردارها رو پاس بده پیدا کنه دیگه این حالا به چیز از اتفاقی به اون و ولی نمیتونه مطلقاً این کارو کنه چون این اینو حتی گزارش کرده باستانی هم به رسیدن و اینو رد کردن برنامه 9 و 10 برنامه شاهرکاری بود که من گوش میدادم حالا فکر نمیکردم در جهان همچین نشستی بوده باشه که از هندوستان تا منوبه ایرانی و میانه رودانی بخوام بیان منوبره انقدر قشنگ با هم کنار هم بچینن برنامه نام نه نهو خانم دکتر دام در اندادای هفت فرمودن که در ریوییدای مندار هفت اومده که ایرانیان مردم ایران میگفتن آنو بعد من کتاب شادان جامشید درخشانی داشتن و گفتم که من این فاجاری رو دیدم ولی یادم نمیومد کجا بود تمام کتاب های تاریخی همه ریختم بیرون اینا تا اخر صف معلومه کتاب شادان جامشید درخشانی دیدم بعد بله در زبان سومری به قلب و بردو و چیزهایی که از آهن آهن شهابی از این اقلامی که از فلات ایران به سمت سومر می رفته به اون می گفتن انا به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام خدمت هممیهنان گرامی و همراهان ارجمند صدای امید از هاشیه و میان برنامه ایران در خدمت شما هستیم یه میان برنامه ما گرفتیم بعد از قصد پیسی و کم قرار بود پخش بشه یه سری مباحث در اونجا مطرح شد که در مورد مسئله شیوه نگاه ایرانیان باستان که در متون کوهن باستانی در متون پهلوی متون عوستایی اومده در مورد ساختار زمین و ساختار جغرافیایی آن دوره و خوانی راست و دریاهایی که در اونجا ذکر شد رو خدمت دوستان عرض کدم یه سری مباحث باقی مونده میخوام تو این چند دقیقه خدمت شنوندگان عزیز بگم و اگر پژوهشگران عزیز دانشجویان و اساتید گرامی به نظرات ناچیز بنده نقدی دارن یا پیشنهادی دارن خیلی خوشحال میشم که بشنوم و همچنین ما مباحثمون همچنان ادامه داره با کارشناسان دیگر برنامه جناب آقای ایران به جناب آقای کریمی و جناب آقای فیروزی و خانم دکتر احسانی عزیز این مباحث رو بنده اینجا عرض می کنم و ما همچنان در خدمت شما شنان عزیز خواهیم باز هم مهمترین بحث ما در این برنامه شاید ده پونزده قسمت مفهوم ایران ویج خواهد بود که اصلا این ایران ویج این مکان ایران ویج کجا هستش خب در اسطوره های ایران, باستان ایران ویج بخشی از خوانی هست برای معرفی ایران ویج بهتر وارد اسناد خود کوهن ایران باستان بشیم که تا به حال یه سه رو دوستان گفتند و باید در مورد مکان ایران و زمان شکلگیری این منطقه این کشور یا این شهر یا عبرشایی هرچی به توافق بینید که این ایران یک شهر بوده یک منطقه بوده یک کشور بوده که در اسطورهای ایران واسه این همه روش تاکید شده اولین سندی که در واقع روش ما بحث خواهیم کرد کسا این سند داله بر کجاست؟ سند وندیداد هست میدونی که وندیداد اوستای نوین هم بهش میگن در وندیداد اومده که نخستین بوم و سرزمین نیکویی که من احورا مزده آفریدم ایران ویج بود کنار رود ونگهو دایتی که احریمن به دشمنی آن را آن سرما را آفرید و در بند چهارم از همون فرگت فکران فرگت دوم وندیداد باشه که آنجا ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان یعنی خصوصیات این ایران ویج رو اینجوری میگه که ده ماه زمستان توش بوده دو ماه تابستان و اولشهزمین خیلی نیکویی هم هست به قول وندی داد در بندهش هم یه سری خصوصیاتی از این منطقه از ایران ویج هستش که در دی میگه که زمین نو است چونان که پیش در فصل زمین نوشتیم هنگامی که تیشتر آن باران را ساخت که دریاها از او پدید آمدند زمین را و همه جاابی ن و به هفت پاری بگذست و دارای زبر و زیر و زبر و بلندی و نشیب شد پاری به اندازه نیمه در میان و شش پاری دیگر پیرامون آن قرار گرفت آن شش پاره به اندازه خوانیرس است. او آنها را کشور نام نهاد زیا ایشان را مرز ببود چنانکه که را که به ناهی خراسانه است مشتق ارزه پاری که به ناهی خواهرانه است کشور سوده دو پار را که به ناهی نیم از کشور فردهش و ویده و دو پاری به ناهی اپاختر از کشور ورو بردشن و ورو جرشن خواندند و آن را که میانست و به اندازی است خونیرس نامند در م... مینوی خیرت هم در برنامه گذشته سندشو خوندم در زادسپن هم سندش خونده شد عرض خصورتون که در اسناد یک سری اسناد اسلامی هم در مورد خصوصیات این خواندیر است و ایرانوجه صحبت شده. در التربی و تدبیر یک عبارتی اومده یک پاراگرافی مدو برای دوستان میخونم هرگاه آرامگاه مردمان بود به سال به چهار سوی جهان از کران تا کران این زمین را ببخشیدند و به هفت بهر کردند و هر به را یکی کشور خواندند نخستین را ارزه خواندند دوم را شبه خواندند سوم را فرد دفش خواندند چهارم را ویددفش دفش خواندند پنجم را وور برست خواندند ششم را وور جرست خواندند هفتم را که میان جهانی است خندرس که همون خانیراسه دیگه خواندند غم یا خنیره خواندند و خندرس این است که ما بدو اندریم و شاهان او را ایران شهر خواندندی در معجم البلدان هم نظر جالبی هست که ایرانیان سرزمین هایی را که فرمان بردار آنها بودند به هفت بخش تقسیم کرده بودند و دور هر دو بخ بخشی را خطی کشیدند که آن محدود را کشور می نامد و کشور از واجهی برگرفته که آن را کشسته نامند و آن به زبان ایرانی نوعی خط است و در این میان این کشور هنیره یا خنرینست قرار گرفته است در مورد مکان ایرانویج که در زادسپرم هم ارز کردم گفته شد و در مینوی خرد، یه نظریه‌ای هست که که اساساً این ایرانوج یا خوانیر کجا هستش ما تو اسناد مختلف یه سری جاها منطقه غرب قفقاز یعنی آذربایجان کونونی رو میدونن بعضیا قرب دریای خزر یعنی آذربایجان و شرق دریای خزر یعنی تاجیکستان و ترکمنستان و قزاقستان و کنونی یا یعنی منطقه آسیای میانه میدونن ولی یه نظریه جالبی هست که البته من اینا بگم که این نظریه رو خود بنده موش قبول ندارم ولی یه نظریه جالبی هست که تف یه دو تا پژوهشگر خارجی صورت گرفته که مکان ایران ویج رو توی قطب شمال میدونن شاید به نظر خیلی هم مزهک بیاد ولی هر نظریه ای هم که مطرح میشه و پژوهشی هم که مطرح میشه باید یه ارزش این رو داره که بهش پرداخته بشه و دلایل اون شنیده بشه این موضوع رو هابگورد و ویلیام وارن و محسس تحقیقات اکسفورد برای نخست بار ارائه کردن و بر اساس پیدایش اسناد جدید و در این حال تعمل اون رو بحث دادن و گسترش دادن حال برای که بررسی بکنیم نظریه وارن و همکاراش جوری هستش به یه سری اسناد تاریخ ایران ما بپردازیم که اساساً ایرانی ها و کلن ایرانیان باستان و یا ایرانیان بعد از اسلام اصلا قطب شمال رو میشناختند نمیشناختند این مسئله رو مورد بررسی قرار میدیم بر اساس اسناد کهن ایرانی ظلمات و یا سرزمین تاریکی نامی بوده که بر روی قطب شمال گذاشته شده و این نشون میده که مردمان کوهن در اون موقع قطب شمال رو میشناختند و نخستین کاشفان اون بودن. شاید اصلا من نپذیم که اصلا ایران وجهه تو قطب شمال باشه ولی یک سری اسنادی هستش که ایرانی ها این منطقه مهم از کره زمین رو میشناختن و زودتر از اون کاشفانی که بعدها گفتن که ما به شمالو کشف کردیم، کشف کرده بودن و حتی رفت آمد هم داشتن. یکی از مثالهایی که میشه بهش اشاره کرد سفرنامه ابن بطوطه هستش که به قطب شمال سرزمین ظلمات رفته بود. در قسمتی از سفرنامه ابن بطوطه اومده که میل داشتم از بلغار به سرزمین ظلمات روم یعنی قطب شمال فاصله ظلمات تا بلغار چهل روز راه است لیکن چون زحمت این کار زیادتر از فایده آن است از قصد خود منصرف شدم اما مسافرت به ظلمات به وسیله ارابه های کوچک که توسط سگ های بزرگ کشیده می شود انجام می گیرد یعنی مثلا موقع اوماد این ارابه که با سگ کشیده می شه همین امروز بهش میگیم سورتمه و الان هم مهم ترین وسیله برای رفتن به قطب شمال هستش زیر بیابان ظلمات سراسر پوشیده از یخ است و پای آدمیزاد و سطور به این سرزمین بند نمی شود اما های سگ در یخ فرو می رود و مانع از لغزیدن آن می گردد در این صحرا درخت و سنگ و آب پیدا نمی شود برای شناسایی راه منحسرن از ها استفاده می شود که چند بار آن راه, راه را رفتهاند. این ها در حدود هزار دینار قیمت دارند حدیق آن است که عرابه را به گردن سگ راهنما میاندازند و سگ راهنما سه سگ دیگر را نیز به دنبال خود میکشد. کشد هر جا آن سگ متوقف شود سگهایی دیگر می ایستن. سگ راهنما را نباید بزنند و نباید به او خشم کنند و باید هنگام قضا قبل از خودشان به او خراک بدهند وگر نه سگ میرنجد جد و میگریزد و صاحبان خود را در معرض حلاک و تلاف قرار اومده سفرنامه ابن بطوطه صفحه 380 این اومده یعنی مشخصه که با جزئیات کامل میرنسته که اصلا چجوری میرفتن و یک سری اقوام اونجا میرفتند و مشخصه که قطب شمال رو کاشفانشون سقرنه بیش انگلیسی نبودن و خیلی چند هزار سال قبل از حداقل ابن بطوته رفته بود میبینیم که دقیقا ابن بطوطه از سورتمه سورتمه امروزی برای سفر به قطب شمال بهره برده و نشون میده که پیش از کشف جعلی اون روبرت پیری و گروه انگلیسی اون ایرانی ها این سرزمین رو دیدن و یک سنده دیگه که میشه اشاره کرد که ایرانی ها میشناختن این قطب شمال رو و خصوصیتش هم رو حتی میشناختن در اسکندرنامه نظامی هم هستش که سفر به ظلمات یا قطب شمال اومده است چند تا بیت اصرشی که جالبه میگه دو اسبه سپه سوی ظلمات ران که یک ماه راه رفت سوی شمال ز قطب فلک روشناوی نمود خط استواب بر افق سردها ها به جایی رسیدن که از آفتاب سوی عطفگاه زمین تاختند زمین از هوا روشنایی رو بود سیاهی پدید آمد از کنجرا بران ماندگان نائبی را نشاند گذرگاه خورشید را گشت حال برامد فرو شد به یک لحظه زود میانجی به قطب شمال افتاد ندیدند پیش از خیالی به خواب دران سایمان راست افراختند حجاب سیاهی سیاست نمود جهان خوش نگردد که گردد سیاه و می‌بینیم که اینجا هم از این دو تا متن عزمت و تطوت از این شعر نظامی گنجوی به این نظر می‌رسیم که نظری وارن و همکاراش درباره ارتباط با قطب شمال ایرانی‌ها با قطب شمال وجود داره ولی اینکه حالا ایران وج اونجا هستش ما به این راحتی واقعا نمی‌تونیم بپذیریم که چون اون موقع حالا مکانی که و زمانی که ایرانویج تشکیل میشه نزدیک یخ بند نامودی احتمالاً ی قطب شمال خب اصلا جای زندگی از الانش هم سرتر بوده و واقعا ما نمیتونیم بپذیریم ولی یه سری اسنادی هم حتی تا ایران کهن هم از خالق این ابن و نظامی مال ایران بعد از اسلام اصلا ایران قبل از اسلام ایران دوره باستان و ما یک سری اسنادی داریم که اونجا هم باید ما یه سری بزنیم ببینیم که آشنایی داشتن باشیم به سرزمینی او اهورامزدا بیشتر سوی شما درود بتاراین که یکی به خراسان شرق و یکی به خاوران غرب شدند که اروند رود و وحرود است چنین گوید که بدان بالاوی انگشت خود هرمز این دو آب را فراز کشید و آن هر درود به هر دو سرزمین بگردان و دریا و به دریایی فراخ کرد باز به هم آمیزند و هنگامی که آن درود تاخته بودن پس از همان سرچشمه ایشان هجده رود ناورو ناورو یعنی کشتی بزرگ مثلا توش بتونه یعنی رود قابل کشتی رو هجده رود ناورو بتاخته پس دیگر رودها از آن رودهای ناورو فرا تاختند ایشان نیز باز به اروند و وحری زند که از ایشان بود سود بخشی جهان و پیش زیستن آفریدگان این نخستین نبرد را آب با اهریمن کرد و دین گوید که دریاوی کرد. به اوهیت نیمروز کنار البرز است کی سوم این زمین را در بر می گیرد. از آن روی فراخ کرد نامیده که کی هزار دریا در او داشته است و اینجا هم البته توی این کاتگوری که اسناد کهنه با ایران باستان میگن که کوه البرز پیرامون جهان هستش و کوه تیرک میان این جهان هستش خورشید را در پیرامون جهان چون افسری در گردش است که به پاکی بر زیر کوه البرز و پیرامون تیرگ باز گردد چنین گویی که تیرگ البرز آن است که خورشید ماه و ستارگان من از پس او باز گردند زیار بر البرز 180 روزن است به خراسان و 180 به خاوران خورشید هر روز به روزنی در اویت به روزنی بشود ماه و اختران و از نیز اپا اختران را همه بند به دو است هر روز بر سه کشور و نیم همی تابد که مثل میبینید 180 به خاوران 180 به روزن 180 روزن از به خراسان به 180 به خاوران اصلا این 180 180 یعنی همون 180 درجه شاد همون کره زمین باشه یعنی مجمع مجموعه درجه های یک کره 360 درجه هستش یعنی بعد از 360 درجه دور زدن کره زمین به همون نقطه خاص میرسه و این نشون میده که اتفاقا ایرانیان و باستان اون موقع زمین زمیناتون کروی هم میدونستان در کتاب گزیده زادسپرم این مسئله اومده خونیرس اندر میان که پاری میانه است آن شش کشور را چون افسر است بهری از دریایی فراخ کرد پیرامون خونیرس بگشت از میان آن شش کشور سوی نیمروز را دریا و بیشک بگرفت آن اپاختر را کوه بلند برست کتاب یکی از دیگری آشکار گردد بر اساس این نوشته کوهن که در واقع دلیل اینکه آی وارن و همکارانشون گفتن که ایران اون در قطب شمال وجود داره در واقع این احتمال رو اینجوری دادن تیم تحقیقاتی ویلیام وارن بر اساس همین سند و به کمک اسناد دیگه که البته مدعی هستن که این اسنادم نظری اونها رو تایید می‌کنه از جمله نقشه‌های قرون وسطایی که بر جای مونده بود به اون هم استناد کردن و یک تز دانشگاهی هم ارائه کردن یه نقشه‌ای که اونها ارائه کردن از خوانیر است که من در این قسمتی که هستش توی سایت اینو میذارم دوستان نظر خودشون رو بدن بر اساس این تحقیقات آقای واردو همکارانش کوههای البورز و زاگرس و برخی دیگر از نامهای اوستایی توی قطب شمال واقع بوده و نه در منطقه جغرافیایی امروزی دلیلی که اون ارائه میکنه دلایل مختلفیه که یه دلیلش اینه قطب شمال همیشه زیرپوششی یخ نبوده این البته از لحاظ زمین شناختی تا حدودی درسته و در دوره مشخصی از تاریخ قطب شمال زمین گرمتر از امروز بوده و اینقدر سرد و یخمندان توش نبوده دومی که این ناحیه گرم بوده اون موقع. موقع هایی که از بره هایی از تاریخ زمین شناسی، تاریخ کره زمین گرم بوده و قاره قطب شمال در منطقه امروزی خودش واقع بوده و حدوده 3218 کیلومتر جلوتر از زمین چون می‌بینید مو هر موقعی که بعد از هر دوره یخ‌بندان که اتفاق می دلیل دلیلی یخ‌بندان اینه که این محور کره زمین تغییر میکنه عوض میشه در طول حدود هر دوازده هزار سال یک بار و این معتقده که در این هایی از زمان اون قسمت از کره زمین این یعنی قطب شمال نسبت به خورشید یه حالتی داشته که حالتی یخ نبوده سرد نبوده بلکه اتفاقا گرم هم بوده و قابل زندگی هم بوده خوش آب هوا هم بوده اتفاقا حتی اون میاد از نظری آلبرت اینشتین هم استفاده میکنه در آلبرت اینشتین در یک جایی میگه که در ناحیه قطب شمال نهشت یک پارچگی از یخ وجود دارد که به صورت متوازن در سرتاسر سر قطب شمال گسترش نیافته چرخش کره زمین بر روی این نهشت بزرگ یخی نامتوازن تأثیر گذاشته است موجب بروز گریز از مرکز می و این تأثیر گریز از مرکز بر روی پوستی سخت و محکم زمین منتقل می شود و تأثیر فضاینه گریز از مرکز وقتی به نقطه معینی می رسد موجب می گرده که پوستی زمین بر روی جبه و هسته آن به چرخش دلاید و اما در باره نقشه های قدیم که در این مورد در مورد همین نظری یعنی انیشتن هم یه نقشه‌ای هستش که از اون استفاده کرده که اتفاقا یه نقشه حاج احمد که و معروف دمشقی به سال 1550 اون نقشه رو بر اساس که گهن تهیه کرده بود که این رو هم بنده توی سایت میذارم و دوستان نظر خودشون رو بدن و بر اساس همون نقشه هستش که اتفاقا ویلیام وارن میاد این مسئله رو مطرح میکنه و حتی ویلیام وارن میاد که این مسئله ایران ویج و خوانی راست که ایران ویجی که توی قطب شمال فرضی ایران ویج فرضی خودش رو که معتقدی که توی قطب شمال بوده تا حدودی با این افسانه آتلانتیس هم یکی میدونه و این دوتا رو یک کشور میدونه یک شهر میدونه دونه معتقد که همون آتلانتیس همون ایران ویجه و معتقد که اتفاقا تو همون قطب شمال هم هستش و دلایل خودش رو ذکر می کنه. که آتلانتیس برای اولین بار اسم آتلانتیس تو نوشته های افلاتون فیلسوف یونانی مطرح میشه. در کتاب تیماروس و کرتیاس که از یه سرزمین افسانه ای نام میبره که آن سوی اروپا و گذرگاه جبل داره قرار داره البته اینو برداشت فیلسوفان غربی هستش افلاطون مشخصا مکان آتلانتیس رو تعیین نمیکنه افلاتون تو رسالی تیماتوس اینجوری می نویسه هزار سال پیش جزیره ای بود که بزرگ با تمدنی ستایش موسوم به آتلانتیس میگه که آتلانتیس افسون بعد 20 میلیون نفر جمعیت داشت که در جزیری خوش آب و هوا به وسط 154 هزار مایل مربع زندگی می‌کردند. در جنگل های انبوه اتلانتیز انواع جانوران بزرگ کوچک می‌زیستند و شهرهای آباد آن با ساختمان عظیم با شکل هرم ساخته شده از مرمر و همراه با نور پردازی بوده دو چشمه آب رود، یکی سرد و یکی گرم که هر دو از کی منبع برمی‌آمدند. فرید آورده و میوه های گوناگون فراوان از زمین می‌رویانند و سپس جزیره اطلانتیس را بین دو پسر خیش که اسم حاکم اطلانتیس بوده بین دو پسر خیش تقسیم کرد پسر بزرگ را که اطلانتیس را به او بخشیده بود اطلانس نام نهاد و در این سرزمین سنگی به نام زرمس که از طلا بود طلای گرانبها بود وجود داشت انواع جانداران حیوانات حتی فیل‌های بسیار در آنجا وجود داشت و زندگی خوش خورده می و تا حدودی تدائی کننده همون سرزمین و دوره تلایی جمچید هم هستش نقشه فرضی ایران ویج و قطب شمال رو هم بنده توی این سایت میذارم که بر اساس نظری وارن این مطرح شده و البته اون دوتا رودی که به شکل تو نقشه هستش دوستان توی همین در واقع زمیمه همین فایل میتونن ببینند دو رود هستش که به شکل دایره ای هستن و دور شهر هستن و این خیلی شبیه هستش به اون خصوصیاتی که از هم از اتلانتیس گفته میشه و هم از ایران ویج که وارن معتقد هستش که این اتلانتیس و ایرانویج هر دو یکی هستن و در قطب شمال هستن گرچه این نظریه رو واقعا از لحاظ هم از لحاظ عقلانی و هم از لحاظ علمی نیم به سختی میشه پذیرفت ولی می توان از داده های این پژهش هم برای ادامه پژهش های دیگه استفاده کرد شنونده دانگردم این نظریه هم بنده تو این قسمت از برنامه آوردم هم هم بنده و هم این نقشه‌هایی هایی که توی زمیمه فایل می کنم این رو هم ملاحظه بفرمایید شما رو تا ادامه قسمت های بعدی این برنامه که همراه با کارشناسان محترم برنامه خواهیم داشت به خداوند خدا نگهدارتون.